دلدسته‌ی دشمنان اسیرم من اسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبم من در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من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 مگر مسلمین نمیدانند که دین اسلام با قربانی های زیادی به رسیده و با فدا شدن جان های بسیاری پیش کرده و با بزندان رفتن جبانان غیرتمند و شیر صفت حفاظت است مگر نمی که ما مدیون این برادران دلیری هستیم که اکنون در زنجیر های دشمنان اسلام دست و بابست روز و شب خود را با نهایت غم اندو زیر شکنجه های نیبیان و علامان آنها به سر میبرند مگر جرم آنها چیز؟ آیا غیر از, غیر از غیر در مقابل اجرال گران زمانی که ما در خانه نشسته بودیم؟ آیا غیر از این است که درشتهاب و سوهای خشف و خنک را بر بستر گرم و نرم تجیح دادند؟ زمانی که ما در راحتی به سر برده و اصلا نگاه خشمالودی نیز بسوی دشمنان نمی انداختیم؟ آری آنان این جرم در خفصهای وحشتناک دشمنان قرار گرفتند و همکنون نوبت ما که باید برای آزادی آنان از هر کنششی دریغ نکنی آنان اسیرم من، اسیرم من, آسیر من, آسیر من, من, آسیر من, من، با کوه درد و غم غریب من، غریب من، غریب من من, غریب من, من بهنای عزتم در دست دیگران بابا و دستبان همینم من همینم من بهنای عزتم در دست دیگران بابا و دستبان همینم من همینم من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 Batan hawa hem, dard haibi aman yabi am shabha wa roz man bana law faghān Batan hawa hem, dard aman yabi am shabha wa man bana دست زوش منام، من من آسیرم من من باقی درد و غم غریبم من من غریبم من من درد دست زوش منام، من من آسیرم من من باقی درد و غم غریبم من من غریبم من, من In jaanamen من balkay sadaabe ban hum ham jawan shiraan har watan In ki, ham, piru, ham jawan, در دست زشمان آسیرم من اسیرم من باکوه در دوام غریبم من غریبم من در دست زشمان آسیرم من اسیرم من باکوه در دوام غریبم من غریبم من Ramze nijat man, Allahu akbara in zulm urashkan mard e Ramze nijat man, Allahu akbara in zulm urashkan mard در دست دشمنان اسیرم من, من اسیرم من باکو ہے درد و غم غریبم من غریبم من درد دست دشمنان اسیرم من اسیرم من باکو ہے درد و غم غریبم من غریبم من زنهای مسلمین ان خوهران ما با شرم و با در بند دشمنان زنهای مسلمین ان خوهران ما با شرم و با حیادر بند دشمنان در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من باکو درد و غم غریبم من غریبم من در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من باکو درد و غم غریبم من غریبم من, من Innan go baad berna me bol dila, paaki bia to ae tu faani dini man. Innan go baad berna me bol dila, paaki bia to ay tu faani dini man. در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبا من در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبا من از بهر دین بخیز ای کاروان من کاروان من دست های ای جيش خالدم از بهر دین بخیز ای کاروان من کاروان من دست های من بگیر ای جيش جيش خالدم در دست دشمنان آسیرم من من آسیرم من با در غریب من با کوه درد و غم غریبم من من غریبم من در دست دشمنان آسیرم من من آسیرم من در غریب من درد و غم غریبم من من غریبم من دشمن بدان بدا دین امواج خیبر را بدر و و این راه سنگرا راه دشمن بدان بدا دین امواج خیبر را بدر و و این راه سنگرا راه در دست زوشم نان من آسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبم من درد دست زوشم نان من آسیرم من با کوه درد و غم غریبم من غریبم من parwa wa baqinis dard-e-bejan kharam dard e in badan, در دل این بدان دین من در دست دشمنان اسیرم من اسیر من با کوه درد و غم غریبم من غریب من در دست دشمنان اسیرم من اسیرم من با کوهد درد و غم غریبم من, من غریبم من در دست زشمن آسیلام من, من آسیلام من با کوهد درد و غم غریبم من, من غریبم من در دست زشمن آسیلام من آسیلام من, اسیر من, من Baku pom he